نردبان جاودان وصل مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص زیارت موضوع سخنرانی، فلسفه و اهمیت زیارت جلسه اول اسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین السلام و السلام علی سیدنا و نبینا محمد <محن> محن. و علی آله تیبین تاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله فی الارزین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 السلام علی جمیع انبیاء الله ورسله وملائكته و, و السلام علينا و عباد الله الصالحين السلام علی نمیر المؤمنین السلام علی صدیغت شهیده السلام على الحسن والحسين سیده شباب اهل الجنه اجمعین السلام علی ابن الحسین زین العابدين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 السلام ابن الحسن، القائم خب در آستانه اربعین حسینی قرار داریم اون که در اربعین امام حسین علیه السلام بیشتر از بقیه مطالب در معارف دینی به ذهن انسان خطور می کند مسئله زیارت است به ویژه روایتی که از امام اسکری علیه السلام و سلام در این رابطه نقل شده که مرهوم آشیخ خباس قمی رحمت الله علیه در مفاتیح قبل از بیان زیارت اربعین این روایت رو از امام اسکری نقل میکنن که امام فرمودن از نشانه شیعان ما پنج چیز است که یکی از اون پنج چیز زیارت اربعین است حالا اون چهارتا رو قبلا نشاره کردیم بحثایی شده اجازه میخوام امشب و فردا شب نسبت به این امر که امام فرمودن از نشانی های شیعیان ما زیارت اربعین است این چه رازی داره و چه نکته ای رو در درایت این روایت باید توجه بیشتری کرد خب دو بخش میشه یک بخش اصل زیارت که چیست و چه آثاری میتواند داشته باشد و به ویژه شبهات و اعتراضاتی که امروزه وهابیان در گوشه و کنار عالم نسبت به زیارت ایراد میگیرند اینو یه مختصری توجه کنیم قسمت دوم به ویژه در رابطه با خاص زیارت اربعین اصل زیارت، اگر کلمه زیارت رو که یک کلمه عربی است بخوایم با یک بیان ساده فارسی بیان کنیم زیارت رو میتونیم بگیم دیدار. همانطوری که شما میگید من به دیدن فلانی رفتم. مریض بود رفتم به ایادتش دیدن کردم. از مکه آمده بود رفتم او را ببینم به دیدارش رفتم. عزیزی رو از دست داده بود رفتم به دیدنش که بهش تسلیت بگم یا گاهی وقتا میگید فلانی یک عالم برجسته ای رو سراغ داشت یک رجل ربانی رو سراغ داشت من رو به همراه خودش به دیدن اون عالم برد در محضر اون عالم ربانی نشستم هم از علمش بهره بردم هم از نفسش و حال و هوای معنوی و روحانیش سود جستم پس ما اگر بخوایم زیارت رو به فارسی برگردانیم همون بحث دیدار که ما مطرح میکنیم، به دیدن کسی رویم به دیدار کسی رویم تو زبان عربی میگن به زیارت رفتن گاهی این زیارت رو ما در رابطه با افراد زنده داریم همینطوری که مثال زدم به دیدن فلانی رفتم به قصد اینکه چون از مکه آمده بود. به دیدن فلانی رفتم چون عزیزیشو از دست داده بود رفتم بهش تسلیت بگم. به دیدن فلانی رفتم چون بهره به پس این دیدارها در رابطه با زنده ها را که ماها داریم معمولا دو می شود. گاهی دیدن برای این است که از ما به اون کسی که دیدار میکنیم نفعی برسه مثلا رفتم به دیدنش تسلی بدهم پس رفتن من باعث تسلی خاطر او می میشود یا گاهی میگیم رفتم به دیدن فلانی برای این که مثلا یه کمک مالی بهش بکنم پس یه منفعتی بش برسونم گاهی دیدار ما نه من رفتم به دیدن فلانی که از او علم بیاموزم رفتم به دیدار فلانی که منو موعظه کنه بتونم از اندرزش استفاده کنم حتی در روایت معروف پیغمبر که قبلا هم بارها به این روایت اشاره کردیم از پیغمبر اسلام پرسیدن یا رسول الله ما در این مجالست معاشرتها، دیدار کردن ها، رفت آمد چه قیدی داشته باشیم؟ با چه افرادی رفت آمد کنیم؟ به دیدار چه کسانی بریم؟ پیغمبر فرمودن همین سؤال را حواریون حضرت عیسی از حضرت عیسی سؤال کردند. غالت الحواریون لعیسا علیه السلام من نجالس یا روح الله ای ایسای روح الله ما با چه کسانی مجالست کنیم؟ غاله فرمود من یذکرکم و الله رؤیتو با کسانی بنشینید، دیدار کنید، رفته آمد کنید، معاشرت داشته باشید که وقتی اونا رو میبینید شما رو بیاد خدا بندازه یعنی اینجا شما میروید به سراغ کسانی که از اون کسان بهره بگیرید چه بهره من یذکر و الله رؤیتو رؤیت اونها نگاه به اونها شما رو بیاد خدا بندازه دو و یزید فی علمکم منطقه. وقتی نطق میکنن وقتی حرف میزنند، وقتی سخن میگن از این نطق کردن و از این حرف زدن و از این سخن گفتنشون به علم شما چیزی افزوده شود و یزید و فی علم کم منطقه و یرقبکم کم فی الاخرت عمله عمل اون افراد رفتار و کردارشون رو وقتی شما نگاه میکنید و میبینید شما رو بیاد آخرت بندازه حالا تو همین روایت کوتاه نسبت به دیدار تا بعد زیارت رو در معنی خاص خودش با هم دقت بیشتری بکنیم آقا ما انسونها یک برای خودمون دو مخصوصا برای کسانی که تحت تربیت ما قرار دارن و خیلی دلمون میخواد که اونا خوب تربیت بشن شما یه پدر رو در نظر بگیرید یه مادر رو در نظر بگیرید یه مربی که واقعا غمخار دلسوزه در نظر بگیرید اون افرادی که تحت تربیتش هستن چقدر دلشون میخواد اونا خوب بشن حالا یکی از راه های اصلی خوب شدن دیدار با برجستگان و خوبان و ارزنده ها و آنهایی که آثار مفید می‌گذارن هست یا نه؟ چقدر اتفاق افتاده یک پدر مثلا به نوجوانش میگه با این تیف افراد رفته آمد نکن چرا؟ چون این معاشرت و دیدار آثار سو باقی میگذاره؟ با این تیپ افراد معاشرت بیشتر بکن آدم توی یه مجلسی میره توی یه جمعی میشینه با بعضی افراد نشست و برخاست میکنه وقتی از مجلس میاد بیرون میگه چه روحی از من تازه شد چه صفای قلبی پیدا کردم چه حال معنوی به من دست داد راستی میشه آدم یه همچه افرادی سراغ داشته باشه هفته دو بار سه بار بره نیم ساعت یک ساعت با اینا بشینه با اینا حرف بزنه حال و هواش عوض بشه همچه چیزی برای ما انسان ها نیست همه آدمها در طول عمرشون این تجربه ها رو ندارن به عکسش گاهی وقتا اتفاق میفته انسان در یک مجلسی محفلی یا با یک فردی فرق نمیکنه معاشرت میکنه رفت و آمد میکنه میگه من در این نیم ساعتی که تو مجلس فلانی بودم در این یک ساعتی که با فلان شخص نشستم چقدر روحم کسل شد چقدر سخنان بد رد و بدل شد؟ چقدر غیبت در اون جلسه صورت گرفت؟ چقدر مباحث عجیب و غریب بیارزشی در آن جامت شد؟ ای کاش این فاصله رو به جای این که در این محفل باشم با یه افرادی مینشستم که در اون فضا در اون محفل یک آثار بهتری سراغ ما می آمد همه این ها حتی بر مبنای تجربه این مطلب رو پذیرفتن که ما انسانیم انسان از معاشرت از دیدار از ملاقات از برخورد با افراد یا تأثیر میپذیره یا تأثیر میگذاره این چند حالت رو در ملاقات انسان ها با همدیگر ببینید یک اگر انسان به ملاقات افرادی برود که اون افراد از نظر علمی معنوی شخصیتی خیلی بالاتر از ما باشن و انسانهای برجسته سالمی باشند در این دیداری که با اونها میکنیم ما از اونها تأثیر بخواییم میپذیریم چون اونها خیلی بالان خیلی ارزندن و میتونن این آثار رو منتقل کنن دو ممکنه ما در یک فضایی با دیداری با افرادی داشته باشیم که این افراد از نظر اخلاقی رفتاری بسیار آلوده و بد باشن ما در برخورده با اونها دو حالت پیدا می کنیم یا ما اونها را تکون می دهیم بحث می کنیم امر معروف میکنیم کنیم نحی از منکر میکنیم کنیم رو اونا تأثیر می داریم. یا اونا می رو ما تأثیر بگذارند ما اون قدرت روحی قوی رو نداریم اون شخصیت برجسته رو پیدا نکردیم، اگر با یه همچه افراد خطرناکی برخورد کردیم، از اون افراد تأثیر بد نپذیریم. در سوره مبارکه مائده، اگر اشتباه نکنم آیه 105 باید باشه. ذات اقدس الهی میفرماید یا یا الذین آمنو لا یزرکم من زل ازه تدیتم. ای کسانی که ایمان آوردید ضرری به شما نمی‌رساند گمراهی و زلالت دیگران اما یه شرط گذاشته شرط چیه از اگر شما هدایت شده باشید اگر شما قوی شده باشید شکل گرفته باشید حالا در یه جمعی برید اون جمعم آلوده باشد به شما تاثیر سو نمیذاره، یعنی شما میتونید اونا رو عوض کنید به همین جهت رفتن در مجالس و محافل آلوده و خطرناک برای کسی که نگران تأثیرپذیری سوء است از نظر شرعی اشکال شرعی داره. هر کسی خیلی بختا میشه عزیزان جوان دانشجو به من مراجعه میکنن ما بورسیه شدیم بریم فلان کشور بریم یا نریم میگم اگر مطمئنی دین تو از دست میدی حرامه بریم این فقها میگن من نمیگم اگر مطمئنی که دینتو تو از دست میدی اما نه ما الان جوانایی داریم رفتن توی این مناطق مشغول تحصیلن نه تنها شکل نپذیرفتن متدین تر شدن و یه عدی را متدین کردن او باید بره او باید بره علمش از اونا بگیره اون باورش و اون اعتقادش و اون ارزشهای معنوی رو به اندازه‌ای که میتونه حتی به دیگران هم منتقل کنه حالا بحث دیدار و ملاقات یه است ما انسانیم ما یه تیکه چوب خشک که نیستیم الان حتی برخورد کردید یه تحقیقات علمی صورت گرفته این لیوان آب آب شیء جمادی بی جانه. مگر این دیگه خیلی هم رواج پیدا کرده اکثرا هم آشنان که با اذکار گفتار خوب برای مثلا این لیوان آبو بگیرید جلو خودتون یه حرفای خوب بزنید بعد این شکلی که بلورهاش پیدا میکنه شکل‌های قشنگ تمیز منظمه اما اگر حرفای رکیک بزنید شکلی که بلوراش در مثلا غالب یخ بذارید یخ بنده پیدا میکنه شکل بده حتی تو جمع... این که دیگه اینقدر معروف شده من چیزی نمیخوام بگم تو دنیای جمادات یا همچه چیزایی رو دیدن حالا تو دنیای انسان که رابطه فکری برقرار میکنه رابطه روحی برقرار میکنه رابطه قلبی انسان ها میتونن با هم دیگه برقرار کنن حالا که این ارتباط روح و قلب و فکر انقدر میتونه مهم باشه پس دیدار یکی از مهمته به تعبیر عربی زیارت یکی از بهترین عوامل شکل بخشی شخصیت انساز. انسانه مگر ما به شکل بخشی شخصیت انسان بها نمیدیم، نمیخوایم شخصیت ما شکل بپذیره؟ حالا یک شکل پذیری شخصیت رو من بگم، شکل پذیری شخصیت علمی، شما و وقتی تو مدرسه نام میکنین، از ابتدای ورود به مدرسه تا آخرین ای که از دانشگاه خارج شود، نمیخواد در اثر بودن در اون فضا، شنیدن مطالب از استاد و انجام دادن کارایی که استاد بهش گفته چی بشود شخصیت علمیش قوی بشه حالا اگر شما خواستید آقازادتون شخصیت علمیش قوی بشه او رو میبرید تو جمع بیسوادان بگذارید؟ میبرید تو جمع مخالفین علم و دانش بگذارید؟ میبرید تو جوی که فضا کلی آلوده است قرار بدید؟ نه و تو اون فضا دیدار او، دیدار معلم باشه کلاس باشه، درس باشه، کتاب باشه، بحث باشه حتی از نظر تجربه ثابت شده مثلا یه شاگرد درسخون خوبه، وقتی تو محیط دانشگاه نگاه میکنه او داره کتاب میخونه این تو کتاب کتابخنهاست اون تو آزمایشگاهس اون مشغول بحث حال و هوای درس خوندن این هم بیشتر میشود اما همین فرد اگر پونزه روز بیست روز یک ما تو فضایی قرار بگیره که همه مشغول سرگرمی و بازی و تعطیلات مثلا وقت هدر دادنن تعبیری که ما تو فارسیمون میگیم پشتش بادخورده یک کمی حال و هوای درس خوندن ممکنه از او گرفته بشه مگر یه که خیلی قویه که خیلی رشد پیدا کردن این تغییر حالت مربوط به چیه مال نحوه دیدار و در فضایی که قرار میگیره فضای علمی برای تغییر شخصیت علمی تأثیر مثبت داره فضای غیر علمی برای شکل بخشی شخصیت علمی میشه مذر. حالا به جای شخصیت علمی شما بگید شخصیت اخلاقی نه اینکه بهجا یعنی مخالفه میخوام بگم حالا یه مثال دیگه میخوام بزنم. شما میخواید یک انسان را از نظر شخصیت اخلاقی عوض کنید. یا آدم خوش اخلاقی بشه خوش بشه، صبور بشه با محبت بشه اهل گذشت باشه، اهل ایثار باشه این ارزش هایی که همه من دوست می به دیدار افرادی برود که اینجورن یا به دیدار افرادی بره که متقببر از خودرای خواهن تاثیر لذا ما یکی از عواملی که برای تغییر شخصیت انسان مؤثر می دونیم بحث چیه؟ بحث دیداره، بحث ملاقات، بحث برخورد کردنه به ویژه در تأثیرات روحی عرفانی بارها شنیده ایم هممون اونایی که اهل این کارا بودن ببینید بعضی وقتا آدم توی وادی نرفتن از دور دستی بر آتش اون یه بحثیه. اما کسانی که تو این وادی رفتن، خون دل خوردن، رنج بردن، زحمت کشیدن، چرا بزرگان از اهل دل گفتند اگر پنجاه سال بگردید که اهل نفس پیدا کنید، زنده دل پیدا کنید؟ ده سال از عمرتون باقی مونده اون ده سال و با اون اهل نفس بگذرونید میارزد نگفتن اینو؟ بسیاری از بزرگان چرا؟ چون بودن با اهل نفس نشستن در جمع کسانی که یک آثار روحی بزرگ میتونن بگذارن این خودش بحث خیلی خاصیه برای تقریب ذهن اجازه بدید با مثال شروع کنم ما یه جنبه بدنی داریم خب جنبه بدنی ما چون ماده است در برخورد، حالا تعبیر دیدار اینجا نمیتونم بگم بگم برخورد در برخورد با اوامل ماده خوب، اوامل مادی بد مثلا توی فضایی که هواش خیلی صافه، اکسیژن خیلی داره حالت سلامتی هوا و غذا در این فضا و در این مکان هست بدن در برخورد با هوای سالم در برخورد با غذای سالم نشاط بیشتر سلامتی بیشتر شدابی بیشتر پیدا میکنه اما همین بدن به جای برخورد با هوای سالم برخورد با هوای پر از دود و گازویل و آلوده و هوای بسیار کثیف به جای غذای سالم طبیعی غذاهای مسموم کننده آلوده وارد بدن بشه تو بدن تاثیر نمیگذاره؟ رابطه ماده با ماده است بدن ماده است هوای آلوده ماده است هوای سالم هم ماده است بدن ماده است غذای سالم ماده است غذای مسموم کننده هم ماده است حالا اگر شما بدنتون رو که ماده است با ماده ای که سالمه کنار هم قرار دادید خب سلامتی بدنتون بیشتر میشه بدنی که ماده است با غذای مادی و هوای مادی آلوده قرار دادید خب بدنتون آلودگی پیدا میکنه ولی جان ما روح ما نفس ما اون حقیقت وجود ما که ماده نیست که بحثای قبل از محرم شبای جمعه بیهیم بحث خوب پرداختیم انشالله اگر عمری بود بعد از پایان سفر برمیگردم به انسان شناسی قرآنی حقیقت وجود ما ماده است نه حقیقت وجود ما اون بعد عظیم ارزنده نفسی و روحی ماست به قول مصنوی، در زمین دیگران خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن کیست بیگانه تن خاکی تو و از برای اوست جانسائی تو تا تو تن را چرب و شیرین میدهی گوهر جان را نیابی فربهی ای برادر تو همه اندیشه ای. ما مابقی خود استخوان و ریشه ای. حقیقت وجود ما نفس ما جان ما نفس ما سری از قرآن بحث کردیم ادله ما فصل دیگه نمیخوام وارد بحثا بشم یسالونک عن الرو الروح قل الروح امر ربی مال عالم امر نه عالم خلق غذای روح هم باید امری باشد نه خلقی بدن خلقی است غذاشم میشه خلقی منتها غذای خلقی میتونه آلوده باشه میتونه سالم باشه همینطور غذای روح غذای روح باید امری باشد یعنی از عالم ماوراع ماده باشه میتواند یک سلسله امور عالم معنا روح ما را جان ما را مریض کنه و میچونه یک سلسله از غذاهای عالم معنا عالم امر عالم روح جان ما را صفا ببخشد نشات ببخشه لذا ببینید تو پرانتز میگم اینا را اگر عمری بود تو بحثای شبهای جمعه بعد از ماه سفر اگر خدا عمری داد و توفیق داد ادامه بحث شناسی قرآن عرض می‌کنم آقایون خانوما اونایی که به این مسائل توجه دارن یه گناه چنان روح رو مسموم میکنه ممکنه مدتها نشاط روحی رو از آدم بگیره یه غذای مسموم وارد بدن میشه به اندازه ای که این مسمومیتش قوی بوده بدن تا بیاد حال اولیه خودش رو پیدا کنه میگه یک دو هفته چه تکونی داد منو؟ گاهی وقتا نمیگیم یه سرماخوردگی پیدا کردم، یه آنفلانزا شدم، ولی آنفلانزا گفتم منو بیاده یه قضیه انداخت، یه بنده خدایی رفته بود برای تحصیلات خارج از ایران، سعی کرده بود که لغات غربی ها رو یاد بگیره و برگش اومد و ایشون یاد گرفت که سرماخوردگی رو میگن گریف، اومد ایران و عد از میخواد به دوستان نشون بده که ما هم لغت خارجی بردیم. خلاصه کلی خودشو سرما داد و سرما خورد و عدسه و صرفه و کنار خیابون واستاد دید همسه سالاش میان رد بشن. بیان بگن چی شده خدا بد نده بگم گریب شد. اونا اومدن رد بشن گفتن چی شده یادش رفت لغت گریب. هرچی فکر کرد چی بود لغت یادش نیومد. گفت سرمای فرنگی خوردم. یه کلمه گریفت یادش نبود حالا ما به قول آقا سرمای فرنگی خوردیم آن شدیم یه وقت شدت این سرما شدت این گرما زدگی شدت این غذای مسموم پرس کنید با بدن ما کاری کرده تا برگردیم به حالت اولیه خودمون یه دو هفتهی سه هفتهی ما رو انداخت بعد میگم آقا چه چکونی داد من سه هفته هیچ کار نتونستم بکنم اینا تو رابطه مادی میشه یا نمیشه؟ در با عوامل روحی هم همین چاره. گاهی یه گناه یه غیبت یه دروغ به ویژه آقایون خانوما خواهش میکنم بعد از این همه داد و فریادی که توی این حسینی ما سر آیات روایات کردیم این نکته رو از بنده خدا آیاتو شاهدی به خاطر تو میگم خدایا تو شاهدی به خاطر تو میگم خانما آقایون آقایون خانوما دقت کنید چه ارز میکنم گاهی یک زخم زبان شما با جان یک انسان کاری میکنه ده سال شما را عقب میندازه چون کاری با جان او کرده شما را ده سال عقب میندازه. گاهی با یک بیانصافی اینا ارتباطات معنوی عالمه یک بیوجدانی مثلا شما یه حساسیتی نسبت به فامیل خودت نشون میدی نسبت به فامیل همسرت یه جور برخورد میکنی دل همسر و فامیلای همسرتو میشکنی چون داری می میکنی خودت متوجه نیستی شاید اما ناخودآگاه بیچارهت میکنه اینا ارتباطات عالم معناست ارتباطات عالم معنا خیلی قوی‌تر از ارتباطات عالم ماده است اینو دقت داشته باشید. حافظ خیلی دانشمندانه گفته است که دلا بسوز که سوز تو کارها بکند نیاز نیمه شبی یا نماز نیمه شبی نیاز نیمه شبی دفعه صد بلا بکند. ما این هر اگه بخوایم بیاریم تو فرمول علمی بخوایم بحث کنیم. آقا جان شما من گاهی وقتا این مثال رو زدم. رابطه ماده با ماده. طرف میگه دو هفتست نمیتونم بخوابم. گرفتار بیخوابی شدم خستم خوابم نمیبره با وجودی که خستم نمیتونم بخوابم خستگی رو خستگی داره منی بیچاره میکنه آقا پزشک وقتی تشخیص داد یه دونه قرص خوابی که از یه عدسم هم ریستر به شما میده این ماده است یا نه ارتباطی که با جنبه مادی بدن شما داره مثلا تشخیص داده علت بیخوابی شما ترشوه فلان ماده در مثلا اطراف فلان مغز های مغزته با این قرص اون آبو خوش میکنه شما خوابتون راحت میبره یه دونه قرص دیاسفام کمتر از یک عدس این کارو میکنه و وقتی یک آه در نیمه شب نمیتونه کار بکنه این تو علامه ماده است، اون تو علامه معناه یک دلی که شاد می شود یک دلی که می شکند. یک زبانی که حق میگوید یک زبانی که بینصافی میکند اینا یه بحث های زریف آلم معناست که اگر خدا خواست تو شبهای جمعه بعد از ماه سفر این بحث ها رو با هم ادامه خواهیم داد اما بحثم اینه ما که فقط جسم نیستیم ارتباط جسم با جسم سالم ارتباط جسم با جسم ناسالم سلامتی یا بیماری ایجاد کنه ما حقیقتمون روحه ارتباط روح با ارواح سالم این میشه دیدار برجستگان و عربی بگی میشه چی؟ میشه زیارت برجستگان حالا اصل زیارت ای است کی میتونه به شما بگه به دیدار بزرگان نرو مگر کسی که قصدش اینه که شما رشد نکنید تمام فرق اسلامی غیر از وحابیت به زیارت قائله فقط وحابیان که میگن زیارت نه شرک است یه بحانم درست کردن بنوان شرک حالا پایش رو باید ارزیم کن آقا شما اگه بخوای شاگردتون مثلا شخصیت علمی پیدا کنه مرتب به شاگرد میگید به دیدار و علما برو یا میگی از علما فاصله بگیر هرکی به آقازاده شما بگه از علما فاصله بگیر معلومه که نمیخواد آقازاده شما عالم بشه اینجوری نیست؟ هر کس با آقازاده شما بگه به دیدار شخصیت‌های ارزنده معنوی نرو یعنی میخواد او را از ارتباط با عالم معنا باز بداره وهابیت مأمور استعمار می‌خواد انسونهای مسلمان را از دیدار شخصیت‌های برجسته دنیای اسلام باز بداره لذا میگه زیارت نه زیارت شرک است شما اگه زیارت شرک باشه حالا بحثشو بعد عرض می‌کنم شما چرا به دیدار و علما میرید که علمتون زیاد بشه؟ مگر فائل مایشا خدا نیست؟ پس چرا شما میرید سراغ عالم؟ اگر زیارت شخصیت های برجست است، است شما چرا برای تحول روحی میرید سراغ برجستگانی که از نظر روحی از شما قوی و در محضر اونها مینشینید و میگید منو موعزه کن؟ چرا پیغمبر این حدیث نقل کردن سنیام تو کتابشون نوشتن؟ با کسانی بنشین که دیدارشون شما رو بیاد و خدا بندازه پس دیدار افراد میتونه ما رو بیاد و خدا بندازه سخنشون علم شما رو بی پس سخن گفتن افراد میتونه در علم ما تأثیر بگذاره عمل افراد شما را متوجه آخرت کنه پس عمل افراد میتونه در ما تاثیر بگذاره خب موثر اصلی که خداست اینا شرکه یا اینا اسباب و علل عالمه که ما موظفیم از این اسباب و علل استفاده کنیم شما اگر کلاس نرید ثبت نام نکنید با معلم رابطه برقرار نکنید عالم میشوید مگه خدا تو قرآن نمیگه اتق الله و کم الله مگه خدا تعلیم نمیده؟ آقا چرا قرآن برای مردم بد معنی میکنید؟ اگر اتقالله و یا علم و معناش این باشد که شما سراغ عالمان دیگر بروید شرک باشد چرا خود خدا پیغمبر رو فرستاده به ما تعلیم بده؟ حواللزی به اصف الامیین رسولن من هم یطلو علیهم آیاته و یزکیهم و؟ یو علم و همول یو علم و پیغمبر تعلیم میده خو خدا که تعلیم میداد اتقالا و یو الله پس خدا یکی پیغمبر یکی نعوذ بالله مگه در عرض هم قرار میدیم این در طول همه یعنی اون تعلیمی که خدا میخواد به تو بده این پیغمبر میاد اونی که خدا میخواد به این گفته تا به شما بگه همچنین تعلیمی که ما تو این عالم داریم کجای دنیا خود وحابیت مگه دانشگاه نداره؟ مگه استاد سر کلاس نمیره؟ مگه تعلیم نمیده؟ خب معلم که خداست پس چرا ماها میریم؟ این برخورداری از است که خدا در این عالم قرار داده حالا اینجا دیدن که مشکل دارن اومدن گفتن پس زیارت به معنی دیداره دیدار برجستگان ارزش است نمیشه منکر شد اومدن گفتن خب زنده ها ولی شما شیعه میرید زیارت مرده ها. پیغمبر که از دنیا رفت دفع شد. شما که از دنیا رفتن شما چطور به زیارت مرده ها میرید؟ اینجا را الان دقیق یک. اولا ما همین کلمه زیارت که بحث کردیم به معنی دیدار است. حتی توی عرف خودمونم میگیم زیارت احل قبور. مگه نمیگیم. وقتی ما میریم قبرستان یه فاتحه میخونیم اینه میگیم زیارت اهل قبور خب ما مرگ را چه معنی میکنیم؟ با توجه به معنایی که برای مرگ بکنیم زیارت اهل قبور معنا پیدا میکنه ممکنه مرگ را به معنی فنا بگیریم به معنی فوت بگیریم اگر مرگ را به معنی فوت گرفتیم زیارت اهل قبور غلطه چون شما از زیارت کسی میروید که موجودیتی نداره به زیارت کسی میروید مثل اینکه مثلا شما مثال رز کنم شما وقتی به دیدار یک استاد میروید که از دانشش استفاده کنید یا به دیدار یک عالم ربانی می روید تا از نفس رحمانیش بهره ببرید او باید موجود باشه اگه معدوم باشد فایده داره کلاسی که استاد سر کلاس نیست من میرم تو این کلاس میگم چرا دانشمند نشدم؟ میگه خو استاد سر کلاس نبود درس بده میگه آقای کسی که از دنیا رفته است خو مرده دیگه یه مرده دیگه کاری برات نمیتونه بکنه میری به دیدارش میگم بسیار خوب. اولا مرگ را چه معنی میکنید کجای قرآن مرگ را فوت گفته مرگ را وفات گفته فرق فوت و وفات چیه در قرآن کریم راجب مرگ میگه چی الازینه تتوفاهم الْمَلَائِكَ وفات و و فی ویا از کلمه وفی وفا وفا کردن با فوت فی و و و ت فرقشی فوت یعنی تمام شد از بین رفت فانی شد اما وفات توفیه توفی یعنی کامل تحویل گرفتن مثال اول دقت کنید تا بعد آیه قرآنو معنی کنم این لیوان آب مال حضرت عالی باشه به من بگید که اینو به عنوان امانت از من قبول میکنیم من یا میگم بله یا میگم نه اگر بگم نه خب مسئولیت امانتداری به احده من نیومد. ولی اگر بگم بله میگن آقا وفای به امانه وفای به عهد بکن در امانتداری خیانت نکن وفاداری کن وفاداری کن یعنی چی؟ یعنی کامل حفظ کن تحویلش بده وقتی اومد به من میگه امانت منو بده اگر قبول کردم امانت رو باید سالم سالم این رو بهش تحویل بدم لذا توفی یعنی کامل و بدون نقص تحویل گرفتن خداوند مرگ را چه میفرماید الله یتوفل انفس hina موتها وقتی مرگ میرسد نفسش را کامل تحویل میگیرد یعنی مرگ جدایی نفس از بدنه اگه نفس از بدن جدا میشود جدایی نفس از بدن یعنی مردن نفس یعنی فنای نفس یا آزادی نفس از ماده این نشتر رو دقت کنید جدایی نفس از بدن یعنی فنای نفس یا آزادی نفس از ماده نفس وقتی در بدن منه گرفتار هجاب ماده است چرا همه انسان ها چشم برزخیشون باز نیست؟ چون هجاب ماده نمیذاره اون کسی که هجاب ماده رو از میام برد با وجودی که نفس در بدن است اون کسی که هجاب ماده رو از میان برد ضمنی که نفس در بدن است چون گرفتار هجاب ماده نید چشم برزخیش باز میشه یا نه؟ اینجا نشسته ممکن حقایقی که الان توی کشور دیگه اتفاق بیفته در گوش شما بگه نیستن این تیپ افراد؟ این چیه؟ یا رؤیای صادقه رو بگم یه کمی دقت کنید آقایون خان ما رؤیای صادقه چیه همین آیه شریفه میفرماید خدایی که در ضمن مرگ نفس را کامل میگیرد حين موتها همچنین فرمود در منام در خواب هم نفس از بدن جدا میکنه ولی با یه فرق در مرگ نفس به بدن بر نمیگرده در خواب نفس به بدن برمیگرده حالا چون نفس بناس به بدن برگرده یک ارتباطی بینشون محفوظ میمونه لذا بدن یک انسان تو خواب ممکنه نشنبه ممکنه احساس نکنه اما مثل جسد مرده نیست چون ارتباط با نفس هنوز باقیه خب چون در عالم خواب شما شهود نومیه دارید یا ندارید شهود نومیه چیه؟ رویای صادقه رویای صادقه چیه؟ خوب دقت کنید چی ارز میکنم شما میگید خواب فهمیدم یا میگید خواب دیدم بله خواب دیدم دیگه با کدوم چشم دیدید با این چشم سر با چشم دل چشم دل باز کن تا که جان بینی و چه نادیدنیست آن بینی حالا با چشم سر من الان توی حسینیه نشستم کربلا تا اینجا چقدر فاصل است نزدیک بیش از هزار کیلومتر. را چشم سر میتونه الان ببینه تو سحن مام حسین چه خبره؟ نه چشم سر نمیتونه ولی اگر کسی چشم دلش باز باشه میتونه یا نه؟ میتونه همین الان به شما بگه همین الان تو سحن مام حسین ساعت بزن دقیقه من میگم بعد برو فیلمشو بگیر ببین ببین اینی که من میگم اتفاق میفته یا نه یعنی چی؟ یعنی چشم دلش حالا کسی که در عالم رؤیا رؤیای صادقه زمانو در هم می مکان در هم مینورده تو تهران خوابیده پنج سال دیگه یه اتفاقی در عربستان و ناس برای او بیفته تو خواب می بینه پنج سال دیگه اتفاق میفته. میگه اینو من پنج سال قبل تو عالم خواب دیده بودم اینه میگن شهود نومیه شهود نومیه بر اساس چیه؟ بر اساس آزادی نفس از ماده تو پرانتز بگم ابن سینا میگه خواب هر کس نشانه درجه نفسانی اون شخص حرف خیلی قشنگ خواب هر کس نشانه درجه نفسانی اون کسه. هر چه نفس بالاتر باشه تو عالم خواب ارزش‌های بالاتر رو میبینه رویاه های صادقش بیشتره لذا بعضی خواب که میگن تعبیر نداره مال پریشانی نفسه این نفسی است که پریشانه است یا یه تعبیری ما توی ادبیات فارسی خودمون میگیم میگیم گرسنه خواب قضا میبیند و برهنه خواب لباس یعنی اون که تو دنیای تخیلات روزمرده خودش هموناره داره تو عالمه ولی خوابی که رؤیای صادقه است آقا مرحوم شاید گفته باشم برادر بزرگ علامه تباتبایی مرحوم سید محمد حسن تباتبایی برادر بزرگتر مرحوم علامه که ایشون زود از دنیا رفتن اگر میموندن میگفتن از علامه تبا تبایی برتر بود مرد عجیبی بود این قضیه که دیگه نوشته شده چاپ شده در حاشیه شفای ابن سینا که جدیدا با تصحیح آیه حسنزاده زاده چاپ شده این قضیه رو نقل میکنه آیا حسنزاده میگه ما شاگرد مرحوم از محمد حسن تبا تبا تبایی برادر بزرگ علامه تبا تبا تبایی بودیم یه عبارتی ابن سینا در یه قسمتی از شفا داره همه اونایی که فلسفه شفا رو می خوندن و اهل فهم این کتاب بودن به این عبارت می رسیدن نمی‌فهمیم چی می گه ابن سینا این تیکه قابل فهم نیست رد می شدن. ایشون می نویسن استاد ما مرحوم سید محمد حسن تبایی طبع فرمودن من یه شبی داشتم شفا رو مطالعه میکردم به این تیکه رسیدم هرچی فکر کردم نفهمیدم. به شروعی که بر شفا نوشتن مراجعه کردم دیدم اونام رد شدن. با شوخی به روح ابن سینا گفتم آخی چی بود نوشته هیچی هم نمیفهمه شب حالا بعضیا میگن خواب بوده بعضیا میگن توی مکاشفه قنوط نماز شبش بوده من حالا اونه کاری ندارم ابن سینا آمد شهودی دست داد گفت آیاست محمد حسن من اشتباه ننوشتم اونایی که استنساخ کردن اشتباه کردن عبارت اصلی اینه به من گفت حالا تو خواب فرز کنی تو ذهنم مند تو ذهنم اون ای که گفت دیدم درسته گفت نسخه اصلی خطی در فلان کتابخونه است برو پیدا کن تطبیق کن عبارتی که من گفتم اینه چون قدیما که چاپ نبود با قلم می نوشتن تکثیر میکردن. اونی که اولین بار نوشته تکثیر کنه اشتباه نوشته میگه از خواب یا از اون شهود در اومدم نگاه کردم عبارت تو ذهنم منده مونده بود معنی میده قشنگه رفتم آدرسی که داده بود نسخه پیدا کردم بعد اصلاح کردم خواب وقتی نفس طبق آیه قرآن مرگ یعنی توفی، وفات، نه یعنی فوت، وفات چیه؟ تماما نفس میره پیش خدا، نفسی که پیش خداس قوی تر است یا نفسی که تو بدن گیره ما میریم قبر یک امام غیر از اینکه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله انواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون که اون یه بحث دیگری داره من میخوام حتی یه مؤمنی که به مرگ طبیعی مرده اگر یک مؤمن به مرگ طبیعی حتی مرد واقعا مؤمن باشه نفسش طبق این آیه توفی شده یعنی با تمام شخصیت نفسانیش رفته پیش خدا در غالب مثالیش قرار گرفته تا قیامت که دوباره بیاد به بدن بپیونده حالا اون نفسی که آزاده است از پیش خداست مثل نفس شما که در حالت خواب میتونه پرواز کنه و شهود رؤیای صادقی شهود نومیه داشته باشه نفسی که بعد از مرگ پیش خداست نفس یک مؤمن نمیتونه صدای شما رو بشنبه؟ مگه برای نفس هجاب مترهه به همین دلیل که ما اینجا سلام میدیم به امام حسین بله از اینجا میشنبه به همین دلیل که ما شما اینجا سلام به امام زمان میدید یکی امریکا سلام به امام زمان میده یکی تو اون برای ژاپن سلام به امام زمان میده همه این سلامها به امام زمان میرسه اگر با نفس در هجاب ماده باشد که این سلامها ها بیمورده نفس بر این مبناز زیارت یعنی دیدار نفس به همین جهت در دیدار ظاهری هم حالا به اینجا خوب دقت کنید بنده برم دیداره به تعبیر عربی زیارت من برم دیدار یک رجل الهی یک شخصیت معنوی آقا تو پرانتز یه چیزی بگم هی میاد اینو بنده شاهد بودم یکی از بزرگان از اوتاد روزگار از بزرگان از اوتاد که گاهی لازم می شد رؤیتهای چشم برزخیش رو میگفت. برای یه که شاید غصت هدایت اونها رو داشت می گفت. جهت دیگه ای نبود یک مرد الهی دیگر رو برای او اشاره کردن خواستن این دوتا هم دیگر رو ببینن هم او مشتاقه به این شده هم این مشتاقه به او. یه جلسه ترتیب دادن شاگردان نشسته بودن این دوتا رو بوری هم نشستن. بعد از سلام علیکم و حال احوال چطوره این فقط او رو نگاه میکرد، او هم فقط اینو نگاه میکرد. یک کلام حرف نزدن بعد از مدتی گفتن رحمت شما زیاد ایشون هم استقبال کرد تموم شد شاگردای اون آقا به اون آقا در غیاب این آقا گفتن پس چی شد شما که چیزی نگفتی، گف ما هم حرفامونو با هم زدیم. شاگرده این آقا به این آقا گفتن گفت ما همه حرفامونو به هم زدیم گفت چطور؟ گفت ما احتیاج به زبان نداریم ما روحمون با هم دیگه حرف میزنه حالا از او بپرس من به او چی گفتم از من بپرس او به من چی گفته برید بپرسید ببینید درسته یا نه بله این آمال آدم های عادیه حالا اینو من بیارم حالا امام که حسابش جداست حالا اینو من بیارم در قالب دیدارهای آلمان ربانی تو این عالم شما یک رجل الهی که مثل این مرد خدا در این حده وقت بگیرید دست بنده رو بگیرید ببرید در محضر این مرد خدا یک ساعت بنده اونجا بشینام امکان این که فیزیکم اونجا باشه متافیزیکم اونجا نباشه هست یا نه بدنم اونجاست ولی فکرم جای دیگره نمیشه؟ حالا انقدر اگرم فکرم اونجا باشه مثل یه وقت بدنم اونجاست تمام فکرم الان ج لذا ممکنه گاهی بغل دستی میتیکن یا کجایی؟ میگم بدنم اینجاست، فکرت کجاست حالا اگه میخواد فکرش هم بیاره میخواد ارتباط برقرار کنه با این مرد خدا مثلا حالا یه بخوره بگه خب منم یه سآل بخورتم حاجه دلار چند شده؟ ساله چقدر فرق کرده؟ جواب خنده هست یا نه؟ کجایی؟ چی داری سوال میکنی؟ این ارتباط نمیتونه برقرار کنه اما اگر این مرد بگه من پنجاه سال گشتم تا یک مرد خدا پیدا کنم حالا که میاد پیش این مرد خدا بهش بگن غذا میخوری میگه چی دقی میگه بلکن ببینم غذا چیه نمیگه به اندازه ای که ارتباط متافیزیکی براش مطرح باشه آقا سردت نیست اتاق میگه مثلا سرما نمیفهمم نمیشه چنان ارتباط با او برقراره چشم به چشمش دوخته گوش به دهانش دوخته ببینه چی خارج میشه چی الان میخواد بهش بگه این زیارت به اندازه معرفت زائر ارزش داره این عبارت یادتون باشه زیارت به اندازه معرفت زائر نسبت به مزور فارسی تر بگم زیارت کننده زیارت شونده فارسی باز بگم دیدار کننده دیدار شونده معرفت دیدار کننده نسبت به دیدار شونده بنده رو میبرید به دیدار یک رجل الهی من میشم دیدار کننده او میشه دیدار شونده معرفت من نسبت به او چقدره گفتن یه بنده خدایی از مقلدین مرحوم شادکریم حائری از یه دهی دور افتاده را افتاده بود اومده بود خب مراجع. بالاخره مردم علاقه دارن مرجع مقلدش بوده او مغلدشه بیاد ببینه گفتن این دهاتیه دلش مخواد حتما شما رو ببینه ولو هفتاد سال قبل هشتاد سال قبل خیلی هم بی سباد اومد من های هایری گفت بگید بقل دست من بشینه من کنه من دی خوب اومد بقل دست چشد دید که مردم میان هیچ سوال میکنن، سال علمی داشتن، سوال فقیه داشتن. این هیچ سوالی به ذهنش نرسید بنده خدا. خواست یه سوالی بکنه. همیجوری نگاهی با آقا کرد. گو آقا این پارچه رو گفتن مرحوم حاج کرک حائری فقط کرباس داخلی میپوشیدن. پارچه دیگه رو قبا نمیدوختن. آقا این کرباسا رو متر چند خریدید؟ ایشون گفت این آقا انقدر, انقدر معروفه مخواست کلاس سر... هره آقا اینقدر خرد کردن همم خندیدم حالا این بنده خدا به اندازه صفای خودش همین مقدار با اون بنده خدا مخواد حرف بزنه بنده از اینجا میکوبم میرم مدینه به دیدار کی دارم میرم یک اولا مرده است حتی اگر شهید راه خدا نباشه مگر الان نفسش توفی نشده کی توفی کرده الله های توفل انفرس. خدا اون نفسش رو برده پیش خودش حالا این نفسی که پیش خدا رفته تو پرانتز بگم اینا خیلی بحث داره آرزو روزو میکنیم یه بختایی باشه، یه وقت بتونیم اینا رو بگیم حالا نمیدونم عمر میشه نمیشه خدا چه مقدر میکنه با اون آیات اگر رسیدیم یه 2300 سال دیگر از روال تفسیر اونجا برسه همینا اینا میشه حضرتاش میارن بحث میکنن قشنگ میشینیم گوش میکنیم انشالله بعد بهشت میریم پای تفسیر امیرالمومنین اون بهشت علی قرآن رو برای ما تفسیر کنه بگه حالا ببین چیه چه میشود حالا نفس را خدا میبرد پیش خودش یعنی چی اگر درجه نفس به باشد که لیاقت رفتن به جمع بندگان برجستی خدا باشه، نفس راضیه مرزیه یا ایتو تو هم نفس مطمئن نه. ربکه، راضی مرزیه حالا ارجعیلا ربک کجا فتخ فی عبادی بیا برو تو جمع برجستگاه بشین یعنی نفس شما رو ان الله به درجه رسیده میبرن تو مجلس مام حسین شما تو عالم برزه خدمت امام حسین باشی کسی از شما درخواست بکنه نمیتونی جواب بدی درجه پایین‌تر درجه اما یه وقت خدایی نکرده نفس برمیگرده برمیگرده الا ربک نه به رحمت رب رب همونطوری که در قیامت به بهشت رب یا به جهنم رب به درجه ای که این نفس به سوی خدا میرود الله یتوفل انفس به اقتضای اون درجه نفسانی شما قرب الهی داره یا بعد از الهی داره حالا نفس اولیای الهی قرب الهیشون چگونه است شما به زیارت اون بدن نمیروید حالا پس میگید چرا اونجا میرم ار میکنم شما به زیارت ون نفس میروید منتها میتونید رابطه با نفس برقرار کنید یا نه این مهمه آقا مگه سید بهرالعلوم مشکلات علمیشو نمیومد تو حرم امیرالممنین از می میپرسی جواب میگرفت باچ این فلز جواب میده این مثلا تلاها جواب میدن. یا صاحب نفسی که سیتره دارد اراده کن از این فلز جواب بیاد آقا ارزشها ها بالاتر از این حرف هاست. ما اگه بنابش رو اثبات توفی بریم از نظر قرآنی میتونیم ساعت ها با هم حرف بزنیم رو بحث فلسفی بریم همه حکما اثبات کردند مرگ آزادی نفس از عالم ماده است گر مرگ رسد چرا هراسم. این راه به توس می شناسم مرگ اگر مردست گون نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ من از او عمری ستانم جاودان ز من دلغی ستاند رنگ رنگ آقا الان شاهد زنده تو این فضا تشکیف دارن دارم می بینم رو بنده هفته اولی که مرهوم بالدم به رحمت خدا رفت جسد رو بردیم شهرستان و دفت کردیم و مراسم تو شهرستان تموم شد اومدیم تهران جلسات ترهیم تهران تموم شد اولین شب جمعه که داشتم میومدم حسینیه خدا یا تو شاهدی بیکم و زیاد میگم الان تشک دارن اینجا میدونم من شب جمعه تنها بودم خودم رانندگی میکردم از در خونه در اومدم بیام تو راه دلم گرفت گفتم خدا یا تو شاهدی الان چقدر دلم بخواست شهرستان بودم کنار قبر مادرم بودم. فاتحه میخوندم یه خورمایی خیر میکردم یه مثلا خیراتی انجام میدادم اما تکریف شرعی من احساس میکنم چیز دیگر دارم میرم حسینیه. خدا یا اگه اینا رو قبول داری ارزشی داره سوابش رو برست به روح مادرم. والله علیه لزیم سیغه قسم شب جمعه اینجا تشفتارانون عزیزی که این فقط تو ذهن من به زبانم نیاوردم تازه اگه به زبان می آوردم تو ماشین کسی نبود بین من و خدای من صبح جمعه عزیزی که الان اینجا تشک دارن به من زنگ زدن فرمودن فلانی دیشب مادر شما رو خواب دیدم به من فرمودن به فلانی بگو دیشب خورماها همه رسید به من مگه روح مرده است؟ آقا وحابیت داره ما رو از ارزش ها جدا میکنه خدا تو رو به عظمت ریشه وحابیت رو بکن این بلا رو از جامعه اسلامی دور کن اینا بلای جان مسلمون شدن ما رو ارزش ها جدا کنند. زیارت مشکله زیارت رفتن تو فضای است، زیارت رفتن در محضر اولیای الهی است، زیارت ارتباط روحی با انفاس قدسیه اولیای است و وقت به ای که انسان میتونه رابطه معرفتی با این نفس برخور، برقرار کنه میگیره مثل رابطه علمی شما الان چهار تا شاگرده دوره دکترا رو تو کلاسی که استاد داره درس میده و چهار تا شاگرد مهدکودک رو تو همون کلاس شاگرد دوره دکترا ارتباط علمی با استاد برقرار میکنه هرچی استاد میگه او میگیره اما اون چهار تا شاگرد مهدکودک میتونن بگیرن چون ارتباط نمیتونه برقرار کنه چه ارتباطی با این انفاس قدسی برقرار میکنیم لذا گفتن زیارت آدابی داره یکی از آداب زیارت توبه یعنی اگه با آلودگی بریم در محضر اینها گناه آلودگی نفس ما رو پایین میاره نفس پایین آمده نمیتونه ارتباط برقرار کنه اما اگر نفس حالا خدایی نکرده گناه کرده واقعا قبلش توبه کنه لذا بعضی ها حتی این رعایت ها رو میکردن قبل از اینکه یه سفر زیارتی برن چله میگرفتن گرچه از راه دور هر روز باید زیارت کنیم چون نفس که مکان نداره که آقا برای روح و برای نفس برای مافوق ماده زمان و مکان مطرح نیست هر آن و هر جا میتونید ارتباط برقرار کنید ولی برای ارتباط خاص چون نفس با بدن بوده است در روایات ما داره وقتی نفس از بدن جدا میشه هر جایی که اون بدن و دفع کنید به هر چند وقتی یه بار به ویژه شبهای جمعه نفس میاد دورور اونجایی که بدنش دفنه سیر میکنه کسانی که به اون قبر احترام میکنن یا میان عرض ادب کنند، به اون توجه بیشتری میکنن یکی از دلایلی که شب جمعه شب مخصوص زیارتی امام حسینه یکیش اینه چون هر نفسی بعد از جدایی از بدن شب جمعه به سراغ یا شب جمعه قبرستون ها میرویم زیارت اموات میکنیم یه رازش اینه بعضیا برای اون زیارت های خاص چله می گرفتن آدابی رو فراهم میکردند. بعد از اون آداب میرفتن رفتن وقت ارتباط برقرار بود و واقعا جواب میگرفتند. موارد عجیبی اتفاق افتاده من همین چند روزی که در محضر شما عزیزان نبودم شب جمعم تعطیل شد شهرستان بابول ای داشتم ضرورت داشت یه چند شبی در جمع اون عزیزان باشم یه آقای اونجا برای من تعریف کرد که گفت مورد رو می شناسم. گفت یک خانومی گپسر پسر من دانشجو بود در فلان کشور یه خانم مسیحی با خانواده پسرم آشنا بودن این بیماری گرفت سرطان هر جا بردن جواب کرد آخری این به ذهنش خطور کرد حالا جرأت کرد اینجوری گفت گف یه دکتری ما ایران داریم اگه حاضری بیای بیا با من بریم ایران اون دکتر حتما تو رو مداوا میکنه گفت ایران میدیم اینقدر پیشرفت علم پزشکی کرده من اینجا تو کشور خودم گفت بله انجام میده اما یه شرطی داره مطبش بیچادر کسی را نمیده گفت چادر سر میکنم گویشون را آوردیم ایران و رفتیم مشهد و قبلا مقدمه ها را همه چیده بودیم یه هوتلی گرفتیم که پنجرهش به سمت حرم باز میشد حالش هم خوب نبود پنجره رو به سمت حرم باز کردیم گفتم اینجاست. یه نگاهی که و عجب چه بارگاه و تشکیلاتی در آشنام نبود یعنی این پزشک انقدر گفت بله گفت فردا صبح برنامه رو با خدام حرمم هماهنگ کردم ایشونا آوردم و پشت یکی از این ها بستم گفتم شما اینجا بشین من میرم داخل از پزشک وقت بگیرم بیام شما رو ببرم خب باشه من اینجا میشینم گفت من رفتم و یه زیارت با سوزی کردم گفتم یا امام رضا آبروم نبر من مطمئن بودم اینو آوردم میخوام حالا برم او رو با خانما بفرستم تو میشه که عنایت کنی آب روی من بچه شیعرون اووری من با قدرت بهش گفتم اومدم بیرون دیدم خانم سرجاش نیست. گفتم این کجا رفت این غریب به یک عده دیگه میگن این دنبالشون اومدم جلو گفت چرا نمیایی دکتر خودش اومد سراغ من. گفتم چطور گفت که شما رفتی یا آقای اومد اینجا گفت که خیلی ناراحتی خیلی دردکشیدی نگران نباش یه جوره آب به من داد خوردم همه دردان تموم شد دارم دنبالت میگردم دیگه لازم نیست دکتر خودش اومد سراغ من آقا زیارت بحث ها داره حالا من فردا شبم عمری بود این بحثو ادامه میدم شب جمعه باز ای بازم اگر عمری بود ادامه میدم تا بعد ببینیم چه کار کنیم خب حالا اجازه بدید وقت گذشته من جنبندی کنم سینم هم بیشتر یاری نمیکنه. ولی یه ظاهر داریم که هیچ کس اینجوری زیارت نکرده اون اصر یازدهم بود و زینب ها. تو آداب زیارت میدونید داره وقتی از راه دور نزدیک وارد شدید برید غصل کنید برید شستشو کنید غصل زیارت کنید. لباس تمیز بپوشید معدب برید ولی زیارت امام حسین دفعه اولش میگن با گرت و قبار راه برید دفعه اول همینجور که اومدید با خستگی و گرت و غبار راه برید به زیارت ابی عبدالله یه رازش اینه یه رازش خیلی رازها داره یه رازش اینه وقتی زینب کبری کبرا عصر یازده اومد به طرف گودال قتلگاه حالا بعضیا میگن من نمیدونم هرچی این ور اون ور نگاه کرد گلی گم کرده میجویم او را نخوامش. به هر گل میرسم میبویم او را بعضیا میگن اگر از تو گودال قتلگاه صدای امام حسین بلند نشده بود زینب پیدا نمیگرد یه وقت یه صدای آشنایی اومد گل گم گشتد خواهر منم زینب كبرا اومد کنار گودال قتلگاه این شمشیر شگستهها رو کنار زد این خنجر شگستهها رو کنار زد این سنگهایی رو که بر بدن آقا زده بودند کنار زد یه نگاهی به بدن بیسر ابی عبدالله کرد آیا تو حسین منی آیا تو برادر منی دست برد زیر بدن حسین این بدن و یه تکانی داد سر به سوی آسمان خدایا این قربانی رو از ما قبول کن اونگاه رو کرد به مدین جده یا رسول الله حاضر و زیل و بر و دول مقدر و و بلاد کسم آیا غم شد لباش به گلوی بریده ی برادر گذار آیا این زائر رو نوازش کردن یه مقبات با تازیانه به شاله های زیدم میزده الله؟ الامك يا ابو ابن الله والله ارواح الليبي حلان بفنان عليك مني ويجي سلام الله أبدا, أبداً ما بغيت و بغي الليل و اللهم ولا جاء له الله آخر الأهد من عيبه السلام